ه یه صدو هفتاد و دو. خوشبختی خود میدید که عشقش نسبت به آنها او را بی نیاز از دوستی با دیگران می نماید و از این رو همین که زوجه او را ترک گفت و پیرامون خود را نگاه کرد دید دوستی برای خود ندارد تا با او درد دل کند و آن یار وفادار از اندوهش بکاهد یعنی او را تسلیت گفته دلداری دهد و تلخگامی وی را به شیرینی مصاحبت خود تا حدی جبران نماید. فصل سه. کارنین اسامی دوستان خود را یک به یک به خاطر می‌آورد. گرچه کنتس ایفانوفا را فراموش کرده بود، ولی کنتس او را فراموش نکرده، به آن روز به دیدن او آمده، چنین گفت: اگرچه خادم از ورود من ممانعت کرد، ولی من پررویی کرده به زور داخل شدم. آنگاه نظری از روی دلسوزی بر کارنین اسکند. کارنین از جای برخاست و نیمکتی تقدیم او کرد. سپس با لبان لرزانی گفت خانم ببخشید من مریض هستم و تصمیم گرفتم که کسی را نپذیرم. کنتس گفت شما نباید انقدر قصه بخورید که خیشتن را مریض سازید. کارنین گفت من از بین رفکم. من رسوا گردیده و نامم بر سر زبانها افتاده است. نمیدانم چه بکنم و روزنه نجاتی ندارم. کنتس گفت شما به قدر بزرگواری و کرم از خود نشان داده اید که مردم نام شما را به نیکی یاد می کند و نباید احساس خجلت و شرمندگی کنید. کارنین، ابرو در هم کشیده و گفت خانم شما که کاملا از قضایه با خبر نیستید تا بدانید که چه اندازه من بدبخت و بیچاره هستم. دیگر نظم و ترتیب در خانهم وجود ندارد زن گفت ای دوست آرام باش من حاضرم نظم و ترتیب خانه شما را بر عهده گیرم آیا حاضری این امر را به من واگذاری؟ کانین دست او را گرفته فشار داد و گفت خانوم من از شما کمال تشکر را دارم زن گفت از من تشکر نکنید بلکه یزدان را سپاس گذارید که حس بخشش و گذشت در قلب شما به ودیعه گذاشت. فصل چهار کنتیس از کوچکی پرهیزگار و بوتقوا بود. در جوانی با مرد اعیان و ثروتمندی ازدواج کرد. اعیان و ثروتمند فقط نجابت و پرهیزکاری را از زنان خود نمیخواهد. چه دو ماهی بیشتر از ازدواجشان نگذشته بود که شوهرش او را ترک گفت. کنتس بیچاره علت آن را ندانست چون از مراجعت او ناامید گردید ناگزیر وی را فراموش کرده به کارهای خیر و دینی اشتغال یافت. کنتس با اشخاص معروف و بزرگی آشنا گردید و از آن جمله کارنین بود. چون کارنین مرد متدین و خوشقلبی بود کنتس او را دوست می‌داشت و بی احترام می‌گذاشت. و وقتی کنتس شنید که چنان مصیبتی بر کارنین وارد آمده است، در نهان خوشحال شد. زیرا می‌دید که اکتون بهتر می‌تواند به کارنین نزدیک گردد. روزی کنتس با خبر شد که آنا و فرونتکی به پترزبورگ مراجعت کردند. وی ای از این خبر گرچه نگران شد، ولی کم تصمیم گرفت به هر قیمتی که شده است نگذارد کارنین با آن زنی که شالوده کاخ سعادتش را ویران کرده و موقعیتش را در جامعه متزلزل نموده است ملاقات کند. از این رو تحریکاتی علیه آن دو نموده و سرانجام شنید که آن دو خیال دارند پترزبورگ را ترک گفته به مزرعه ی بروند. در این موقع، کنتس نفس راحتی کشید و یقین پیدا کرد که کارنین از ملاقاتی که حتما قلب او را بیشتر زخمی و خونین می رهایی جست است. روزی نامه ای به خط کارنینا به کنتس دادند. با حال تأثیر آن را باز کرده تونین خواند. خانم کنتس. حس تقوا و پرهیزکاری که خداوند در نهاد شما به بدیه گذاشته است، مرا وادار نمود که این نامه را برای شما بنویسم و من یقین دارم که مرا خواهید بخشید فراغ فرزندم مرا خیلی معذب می‌دارد شما را به خدا اجازه دهید که پس از رفتنم یک بار او را ببینم من می‌دانم که باید این تقاضا را از کانون می‌کنم ولی چون می‌دانم که او از این درخواست نگران می‌گردد لذا از شما چنین خواهشی را نمودم. آیا شما حاضرید فرزندم را به نزد من بفرستید یا اینکه من به خانه پدرش بروم؟ من چون شما را زنین نیکوکار و کارنین را مردی بزرگوار می از این رو یقین دارم که این خواهش مرا برآورده خواهید ساخت. شما نمیدانید که قلب من چگونه از مهر فرزندم مالا مال است و هر وقت که یادش می کنم چقدر به تپش در می آید. اگر خواهشم برآورده شود، بی اندازه از شما سپاس گذارم. کونتس این نامه را دو بار سپس بیدرنگ به نزد کارنین که در ادارهش مشغول انجام بعضی کارهای رسمی بود شتافت کارنین همین که کونتس را دید از او پرسید چه خبر تازه ای آورده اید متاسفم از اینکه مجبورم مزاحمت شما را فراهم سازم آن کارنینا در می باشد و نامه ای برایم فرستاده است از شنیدن این خبر رنگ از چهره کارنین پرید و زیر لب گفت من منتظر همین امر بودم انگاه نامه را از دست کنتس گرفت و امر خانده و با کمی خجلت گفت من از انصاف بدور می بینم که خواهش او را نپذیرم کنتس گفت براستی بزرگواری تو قابل ستایش است، ولی نمی دانم چرا این زن این همه بدی تو را خواهان است چرا او به این زودی که هنوز مردم رسوایی او را فراموش اند به این کشور مراجعه نمود کارنین سر به آسمان بلند کرده و وزیر لب چونین گفت خداوندا من از گناه این زن چشم پوشیدم و او را بخشیدم و نمی او را از دیدن فرزندش محروم نمایم ای دوست آیا تو گمان می کنی که آنها فرزندش را دوست می در هر حال من می دانم که تو او را بخشیده ای ولی آیا سزاوار است که شک و نگرانی در قلب طفل معصوم ایجاد نموند کودک بی گناه تصور میکند کند که مادرش مرده و ما هم این تصور را در به تقویت نموده ایم او برای مادر خیش نماز میگذارد و از یدان پاک میخواهد خواهد که از گناهان مادرش درگذرد و البته این امر هم به صلاح طفل و هم به صلاح آننا می باشد عقیده منبری است که به آمنا اجازه ندهید طفل را ببیند این ملاقات طفل را متأثر می نماید همچنم که خاطر شما را هم آزرده ساخت. آن نازنیست که قلب ندارم و, و گمان نمیکنم به کفل خیش هم محبتی داشته باشد اگر اجازه میدهید فوری جواب نفی به او بدهم کنتس پس از ادای این کلمات منتظر جواب کانین نشده قلب را به دست گرفته و چنین نوشت خانم چون دیدار شما از بچه سبب دادن پاسخهایی به پرسشهای بیالای شوی خواهد شد که بدون تردید ذهن او را مشوش خواهد ساخت خداوند به شما صبر و شکیبایی عطا فرماید کنت است لیدیا کانین نامه‌ای را که کنت نوشت خواند گرچه که موافقت و نه اعتراض کرد ولی کن است نامه را برای آن ارسال داشت اما کانین در آن روز نتوانست از ناراحتی به کار خود ادامه دهد چه میدانست که مخالفت دل آننا را خواهد شکست ولی با این حال خیانتهای همسرش را به یاد آورد و احساس شرمندگی کرد فصل 5 فروسکی و آننا به پترزبورگ رسیده در یکی از مهمانخانه‌های شهر اقامت گزیدند فرنسکی اتاق جداغانهی در اشکوبه اول گرفته و برای آننا و دخترش و پرستارش اتاق دیگری در اشکوبه دوم اجاره کرد نخستین کاری که فرونسکی پس از بازگشت به پترزبورگ نمود این بود که به دیدن برادر خود رفت. در آنجا مادر خویش را که برای بعضی کارها از مسکو آمده بود دیده و مادر و برادرش با گرمی او را ملاقات کردند. درباره مسافرت وی در اروپا و دوستان و آشنایانش سالاتی نمودند ولی هیچ کدام کلمه ای درباره آنا بر زبان نیاوردند سرنجم برادرش از وی پرسید که رابطه ای با آنا چگونه است؟ فرونسکی پاسخ داد که رابطه آنها همچنان پایدار است و مقدمات ازدواج را با او فراهم می نماید و او اکنون آنا را به چشم همسری نگاه می کند. فرونسکی لحظه ساکت مانده سپس گفت اگر مردم درباره ازدواج ما صحبت هایی بکنند و بد بگویند من چندان اهمیتی نمی دهم. ولی در عین حال حاضر نیستم خیشانم از عمل من خورده بگیرند و نام ما را به زشتی ببرند برادری فرونسکی که از او بزرگتر بود حاضر شد قضیه را در بین افراد خانواده مطرح نموده و آنها را موافق نماید اولی خانمی که فرونسکی را پس از مراجعتش ملاقات نمود شاصد خانم بیتسی بود همین که او را دید فریاد برابرد آه تو برگشتی؟ آنه آن چطور؟ من از دیدنت خیلی خوشت فقطم. در کجا اقامت گذیده ای؟ بدونی شک پس از مسافرت بهدابر اروپا پترزبورگ در نظرت گرفته و محسون خواهد آمد. ما هر چگونه گذراندید؟ قصیه طلاق به کجا کشید؟ بهتسی وقتی شنید که آنها هنوز از شوهرش طلاق نگرفته است من به دیدن آنها کارنی نخواهم رفت و همیتی به کلام و سرزنش دوستان خود نمیدهم. روز دیگر به دیدن آنها رفت ولی ملاقات مردی که در محیط و ریا بود. بتی مباهات میکرد از اینکه او نخستین کسی است که به دیدن آنا آمده است ملاقات آنها بیش از چند دقیقه طول نکشید در خلال آن صحبت درباره چیزهای غیر مهمی در گرفت و سرانجام بتی گفت تو درباره طلاقت چیزی به من نگفتی آنا گفت من شخصا اهمیتی به این تشریفات ظاهری نمیدهم شاهزاده خانم گفت برای خیلی ها درباره معاشرت نامشروع تو با فرونسکی صحبت ها مینماید در هر حال امروزه انجام تشریفات طلاق خیلی ساده و آسان است شنیدم که روز جمعه آینده خیال دارید به مزرعه فرونسکی بروید این امر مایه تأسف است زیرا نمیتوانم برای بار دیگر شما را ببینم فروسکی از لهجه بدسی دانست که اگر آن خیال داشته باشد بین مردم ظاهر شود و با آنها رفت آمد پیدا کند به چه مشکلاتی برخورد خواهد کرد ولی فرونسکی به عهده گرفته بود که افراد فامیل خود را راضی کند تا نسبت به آنها خوشرفتاری نمایند. فرونسکی فکر مادر خود را نکرده بود زیرا او میدانست که مادرش تا چه حد از آنها نفرت دارد زیرا وی معتقد بود که آنها سبب کنارگیری فرونسکی از اصش و محروم شدن از یک آینده درخشان او شده است. از این رو فرونسکی بیشتر مساعدت شخصد خانم فریا زن برادر خود را انتظار داشت زیرا فاریا از ملاقات وی گرسند شد و در خانه خود از او پذیرایی خواهد کرد به این امید فرونسکی به خانه‌ی فاریا رفت و و رقبت خود را در این باره اظهار نمود شهستد خانم فاریا با خجلت پاسخ داد آقای فرونسکی شما می دانید که من تا چند روز شما را دوست و محترم می‌دارم و چگونه برای خاطر شما از هیچ کاری دریب ندارم بلی نمیتوانم از اظهار این حقیقت خودداری کنم که شما از من می خواهید که به دیدن آننا بروم و از او در خانه خود پذیرایی کنم. من نمیتوانم توانم چون این کاری را بکنم. زیرا من دخترانی دارم که باید به با آینده ای آنها علاقمند باشم. و همچنین شوهری دارم که باید روابط او را با مردم محترم شمارم. بر فرض اینکه من به دیدن آننا بروم. خود او به خوبی میداند که من نمی وی را به دعوت کنم. باز بر فرض فرض اینکه او را به خانه دعوت کردم نمیتوانم او را با دیگران که با نظر دیگری به او می‌نگرند معرفی نمایم البته این امر هم قلب او را جای‌هدار خواهد ساخت فرونسکی با کمی خوشونت گفت ولی گمان نمیکنم آن کانینا از خیلی از زنانی که با شما رفت آمد دارند پستتر شده باشد فرونسکی پس از ادای این کلمات از جای برخاست شخصاد خانم فريا فریاد, فریاد بر آورد از من خشبناک مشو گناه من نیست فرونسکی با اندوه تمام پاسخ داد فریا من از تو خشبناک نیستم ولی درد عذاب من دو دوچندان شد زیرا این امر علاقه ما را خواهد بسیخت انگاه فرونسکی شخصاد خانم را ترک گفت فرونسکی دریافت که کوشش او برای افتتاح باب دوستی و ارتباط او با دیگران بیهوده است و خواه و نخواه با آنا کارنینا باید چند روزی چون دو شخص قریب در پترزبورگ به سر ببرد. موقعیت سررونسکی در پترزبورگ خیلی دشوار شد چه کارنین را در هر کجا می دید و نام او را از هر زبانی می شنید چیزی که بیشتر فرونسکی را متأثر می ساخت این بود که آنها در آن روزها خیلی عصبانی به نظر می رسید و مثل این بود که امری را با حال تأثر از او پنهان می دارد. فصل شش قبلا آنا از اینکه به پترزبورگ مراجعت کرد خوشحالی نمود زیرا امیدوار بود که پسر خود سیر را ببیند وقتی ترن به شهر پترزبورگ نزدیک شد قلبش بنای تپیدن را گذاشت زیرا تصور می‌کرد که فرزندش در ایستگاه منتظر او باشد ولی آنا دیگر فکر نکرده بود که چگونه با فرزند دلبرد خود روبرو خواهد شد همین که به پیترزبورگ رسید و موقعیت ناگوار خیش را ملاحظه کرد، متوجه شد که ملاقات با فرزندش آن که تصور میکرد مقدور نیست. آنکانین ها دو روزی در پیترزبورگ توقف کرد و همه یه فکرش متوجه فرزند خیش بود. آن نامیدید که وی جرأت را ندارد که راستن به خانی کارنین برود و فرزند خود را در آنجا ببیند. زیرا ممکن بود که در آنجا با روبرو کارنین رو و یا این که این او را از داخل شدن به خانه ممانعت نمایند. علاوه برای اون ناگهور بود که نامه‌ای برای شوهر خود بنویسد و این درخواست را ب... از او بنماید. یا در راه منتظر فرزند خود شده و دیدار کوتاه و ای از او بکند. او مدتی بود که خود را برای ملاقات حاضر ساخته بود. و سخنانی داشت که به پسر خود بگوید و مایل بود که صدها بوسه از گونه و چشمان و دهان او بردارد پس ملاقات در وسط راه برای او کافی و رضایت بخش نبود. آن نا سرانجام دانست که کنتس لیدیا ایفانوفا چه رولی را در خانه شوهرش بازی می کند. از این رو آن نامه را که به عزت نفس و کبریا و قلب او لطمه می وارد می‌آورد. نوشت و سعی کرد که در نامه خود اشاره به بزرگواری و کرم و بخشش شوهرش کارنین بنماید. تو اگر نامه به دسته بی افتاد نتواند عملی که مخالف بزرگواری و کرم اوست بکنند آنها با کمال بی منتظر پاسخ گردید و سرانجام با درد و نامیدی آن را دریافت نبود و متأثر بود که در غم و اندوه شریک و غم خاری ندارد کارنینا سعی و کوشش خود را درباره ملاقات پسر خیش از سر پنهان داشت زیرا می ترسید که وی او را تحقیر و تمسخر نماید و همین عمل او را از فرانکتی متنفر سازد در حالی که فقط فرانکتی را داشته که برای وی باقی بود گرچه نخست پاسخ کنتس او را متحسر نمود ولی چیزی نگذشت که خشمناک شده و چنین پنداشت که آه چه سنگ دلی آنها میخواهم قلبم را پایمال و طفلم را بیازارند ولی من تسلیم اراده ای آنها نخواهم شد روز بعد روز تولد سیرج بود آنّا تسلیم گرفت در آن روز به خانه ی شوهر خود برود و به نوکران و کلفت‌ها رشوه بدهد تا نیرنگی به کار برد و به هر قیمتی که شده است فرزند خود را ببیند فوری به سوی مغازه‌ای که اسباب بازی می فروخت رفته و مقداری اسباب بازی خرید و نقشه‌ای پیش خود بدین تحریف طرح کرد که نقابی بر چهره کشیده و صبح خیلی زود پیش از آنکه شوهرش بیدار شود به خانه او رفته، به دربان یا باغبان و پیش باشی رشدهی بدهد تا به وی اجازه دخول دهند. بدون آنکه نقاب از چهره بردارد، آنها وانمود کند که وی از جانب یکی از افراد خانواده آمده است تا به مناسبت روز تولد طفل شاد باش گفته و هدایا را تقدیم بدارد. انده صبح خیلی زود نقشه خود را عملی کرد. خویش را نزدیک خانه ی کانین نگاه داشته و از آن به زیر آمد. سپس به سوی در رفت و زنگ را نواخت. دربان آمد. آنا پولی در دست او گذاشت و گفت: میخواهم سیرج را ببینم. آنگاه داخل شد. دربان نگاهی از روی تعجب به پول افکند و فوری به دنبال آنا دوید سال سوال کرد: خانم، چه می‌خواهید؟ آنا کانینا پاسخی به او نداده و سرعت خود افسوده و داخل شد. سر پیش خدبت که استراب و نگرانی آن دید، پیش آمده با کمال ادب پرسید خانم چی فرمایش داشتید آنها گفت من از جانب پرانس سکرد بوف آمدم تا سیرش کانین را ببینم رئیس خدمه در حالی که به فرتابهای اومینگریس گفت ولی خانم سیرش هنوز خواب است آنا از مشاهده راهرو که به همان حال سابق باقی بود متأثر شده احساساتش برانگیخته گردید. و نزدیک بود منظور خود را از آمدن به آنجا فراموش کند سر پیش خدمت در حالی که پالتوی او را میکند گفت خانم آیا ممکن است لطفا کمی منتظر شوید؟ ولی همین که پالتو را درآورد و بار دیگر به چهره آنها نگاه کرد فوری با وجود نقاب او را شناخت با کمال احترام شد آهسته گفت بفرمایید خانم آنها خواست چیزی بگوید ولی نتوانست آنگاه نگاهی به سرپیشخدمت پ به سوی پلکان جهید و با سرعت بنای بالا رفتن را گذاشت. مستخدمم سالخورده زنان به دنبال او بالا رفت و گفت: «خانوم از این سوپ فرمایید ببخشید خانم آیا منتظر میشوید تا من آقای کوچکم را از آمدن شما با خبر سازم آننا گوش به حرف او نداده به سوی اتاق تفلخیش دارید در حالی که فریاد میزد بگذار او را ببینم بگذار او را ببینم آنا در اتاق را باز کرده و داخل شد. آن ندید که طفل در رخت خواب خود نشسته و خمیازه می کشند. با حال خورسند ولی گام های لرزانی نزدیک شد و گفت سیرج، سیرج، سیرج عزیزم. آنها در حالی که میخواست با نگاه های خود سیرج را ببلعد اظهار داشت. پروردگارا چرا این لاغر شده؟ چشمانش گود رفته و موی سرش کوتاه گردیده بود. طفل نگاه طولانیی برو افکند. گویی آنچرا میبیند باور نمی‌کند، ولی ناگاه مادر خود را شناخته تبسمی نمود و خود را در آغوش وی افکند. آن با صدای محسونی زیر لب گفت سیرج فرزندم. کودک گفت آه مادر. آنگاه سیرج در آغوش مادر قلتیده. بهجت و حرارتی به مادر خود دمیده و با آن لحن معصومانه خود به مادرش گفت امروز روز تولد من است و من می تو به اینجا خواهی آمد بیختیار قصرات عشق از چشمان آنکار نینا سرازیر شد آهسته دست بر روی سر و چهره سیرج کشید و دانست که فرزندش تا چه حد در قیاب او تغییر کرده و لاغر شده است سیرج از مادر پرسید مادر چرا گریه می کنی؟ آنا در حالی که از فرو ریختن سرشگ دیدگانش به سختی جلوگیری میکرد گفت من گریه نمیکنم من از روی خوشحالی اشک میریزام من خیلی وقت است که تو را ندیدم آنگاه بر عواطف خیش چیره آمد و گفت به نظرم وقت آن رسیده باشد که لباسهای های خیش را بپوشی پس از ادای این کلمات بر روی نیمکتی که در نزدیکی تخت خواب بود نشست و همچنان که دست سیرج را در دست داشت گفت چگونه لباس خود را بدون مساعدت من بپوشی چگونه پسر گفت من حالا دیگر با آب سرد سر روی خود را شویم. پدرم گفته است که من نباید با آب سرد چهره خویش را بشویم ولی مادر شما بر روی لباس هایم نشسته ای. انگاه با صدای بلند به نای خندیدن را گذاشت. آننا نگاهی بر سیج افکند و توسط می بینیم. سیریج فرادی که آمیخته به خوشحالی و گریه بود از نهاد خیش برآورد. آه مادر کوچکم آنگاه سیرج برای بار دوم خود را در آغوش مادرش اف کلاه هستر او برداشت و گفت مادر تو احتیاج به این نداری همین که مادر را بدون کلاه همچنان که همیشه میدید مشاهده کرد بنایی بوسیدن او را گذاشت و مثل این بود که تا آن لحظه او را ندیده است آنها از سیرج پرسید آیا یادی از من می کردی؟ آیا گمان میکردی که من مردهام کودک گفت به من گفتند که تو مرده ولی من کلام آنها را باور نکردم ها گفت. آه فازنده کوچکم، حرف آنها را باور نکردی؟" کودک گفت: "آری، باور نکردم. من میدانستم که تو نخواهی مرد." آنگاه دست مادر را گرفته و به لبان خیش نزدیک کرد. در این لحظه در باز شد. سر پیش خدمت سر خود را داخل کرد، ولی هیچ کدام متوجه او نشدند. نوکر سالخورده لحظه‌ای مردد مانده، سپس در را به آرامی بست. و در حالی که عشقهای خود را پاک میکرد پیش خود آهسته گفت ده دقیقه دیگر هم صبر خواهم کرد ولی نوکر نتوانست بیش از این به مادر و فرزند مهلت بدهد زیرا چیزی نگذشت که صدای پای کارنین را شنید از این رو با سرعت تمام در را باز کرده و در گوش آنان سخنانی گفت چهره آننا از شنیدن کلام او نخست سرخ و سپس از آن زرد گردید تفلش را به سینه و زیر لب گفت آه فرزند عزیزم و جرأت اینکه کلمه وداع را بر زبان آورد نکرد ولی تیف آن را در چشمان وی خواند و فهمید آن کارنینا گفت سیرج تو حتما مرا فراموش نخواهی کرد چون نیست و دیگر چیزی نگفت آه چه سخنانی را شب گذشته و قبل از آن در ذهن خود حاضر کرده بود که به فرزند خود بگوید ولی اکتون نمیداند چه بگوید و یارای سخن گفتن را ندارد. طفل دانست که مادرش چه میخواهد به او بگوید. طفل دانست که مادرش بدبخت است و او را دوست می دارد. همچنین دانست که مادرش حق ندارد با پدرش ملاقات کند. او این چیزها را از سخنان آهسته خدمه و از نگاه های ترس و شرمندگی که در چشمان مادرش همین که رئیس خدمه کلماتی در گوشش گفت نقش بسته بود. درک کرد. همه ای اینها را فهمید ولی نمیدانست چرا مادرش حراسان و شرمنده است. سیرج خواست سوالاتی از مادر بکند، تا شک و تردیدی که به او دست داد برطرف کرد، ولی جرأت آن را نکرد. او دید که مادرش محزون است و درد میکشد. از این رو دلش به حال او بسوخت و نخواست با سوالات خیش او را بیشتر بیازارد. سر خود را بر روی سینه ی مادر گذاشت و گفت: مادر او هنوز بایه بده است آنا به او نگاه کرد تا ببیند که آیا او معنی آنچه را که میگوید میفهمد از نگاه وحشت زده او دانست که میفهمد و او از پدرش میگوید و او میخواهد از او سؤال کند که احساسات او باید نسبت به پدرش چگونه باشد آنا به او گفت سیهچ او را دوست بدار او از من شرافتمندتر و نیکوتر است تنها من باید سرزنش و ملامت شدم تو بزرگ خواهی شد، آنگاه خواهی فهمید که داوری چگونه است. قطرات اشک بر های کودک جاری شده با ناامیدی فریاد برآورد مادر، از تو شرافت و نیکوتر وجود ندارد. آنگاه گفت، آه ای تیفل که عزیزم، آنگاه چون اطفال به نای گریستن را گذاشت. نوکر سالخورده خورده سراسیمه وارد اتاق شده آیسته گفت، آقا دارد می آیند. آن ناکلاه خود را برداشته، طفل در رخت خواب فرو رفت و چهره خیش را در میان دو دست پنهان کرده با صدای بلند به گریستن را گذاشت. آن چهره نمناک طفل خیش را بوسید، نقاب بر چهره افکند ولی به ناگاه خیشتن را در برابر شوهر خیش یافت. کارنین او را دیده در جای خود توقف نمود و قامت خیش را در برابرش به احترام خم کرد. آن نگاهی به سرطاب هایی کارنین افکنده و با وجود اینکه لحظه پیش از کرم و بزرگواری او سخن رانده بود ولی اکنون به خاطر طفل خیش نسبت به او احساس نفرت و تحقیر نمود. آن کارنینا با سرعت خارج شده و از حواظ فراموش کرد که از بازی هایی را که به آن زحمت و دقت انتخاب کرده بود تقدیم طفل خیش نماید. هفتم نه فقط میخواست از فرزندش دیگر به نماید ولی هرگز گمان نمیکرد که دیدار وی تا این اندازه در او تاثیر نماید همین که آنها به مهمانخانه مراجعت کرد مدتی در دریای فکر و اندیشه فرو رفته با خود میاندیشید که چرا او در مهمانخانه است و نباید با فرزند خود در یک جا باشد آن نازیر لب گفت آره همه چیز پایان رسیده و من مانند به پیش یکی تنها ماندم. آنگاه بدونان که کلاه خود را از سر بردارد در کنار بخاری نشسته خیره به آتش نگریست. خادمه ایتالیایی او آمده و از پرسید که آیا مایل است لباسایش را بکند؟ آننا با تعجب او را نگریسته پاسخ داد. باشد برای بعد. پیش خدمت برای او قهده آورد ولی آننا گفت بعد خواهم خورد. پرستار فرانسوی دختر کوچکش را آورد. او را بلند کرد و نگریفت. آنا تبسمی کرد و دختر را بوسید. ولی آنا حس کرد که آن محبتی را که به سیرج دارد با محبتی که به دختر دارد قابل قیاس نیست. آری او سیرج را بی اندازه دوست میداشت کودک دختر زیبا و ظریفی بود ولی آنا به علتی او را به قدر سیرج دوست نمیداشت سبب آن هم آشکار بود چه او را در اوضاع و احوال ناگوار و دشواری به دنیا آورده بود یا شاید برای اینکه دختر را همیشه می‌دید و پسر خود را نمی توانست ببیند آن ناطفل را به پرستار داده و به او گفت که برود آنگاه چمدان خود را باز کرد و از آن مقداری عکس بیرون آورد پس از آن عکس های سیرج را که در چند سال عمرش از او برداشته بودند تماشا کرد